این داستان که امشرفت مرد شما هستین خیلی داستان مهم نیست این داستان فردوسی و اسلام به جهتی این که این رژیم پرورکتی که در کشور ما برکار هست در واقع یک خصومت بریبی اینها با فرهنگ ایران واسطان یعنی اون چی مربوط به ایران گذشته است و پیش از عرب نه تنها در ایران در هر جای جهان این رو زلالت و گمراهی داشتند اساسا نگاه اسلام به فرهندهای قدیم این چنین بوده یعنی در تعبیر و تفسیر واژه جاهلیت گفتن نه این که جاهلیت روزگار جاهلی عرب بوده که جاهلی هم نبوده به تحقیق جاهلی نبوده اینا بچه‌استهای بسیار بسیار مدرسی است. گفتند اون چه مدنیات ایران و چین و یونان و اینها پیش از اسلام بوده اینا همه از همین زلالت و گمراهی بوده و زمانی که جهان به نور اسلام منور شده است از اون تاریخ ما تاریخ می این است که تصور نفرمایید که تنها روشمنی ملایان با فرهنگ قدیم ایران باستان یه چیز محلی نیست این یک, یک نظرگاه بوده از ابتدا توسط علمای اسلام و اون چه کوشیدن البته موفق نشدن من بر این هستم که اگر مردم ما نبودن اون چه هستن و ملایان اندکی شیوه طالبانیشون و تففا شما افزون بود امروز ما حتما تخ همشه چیزی نمی‌داشتیم. کما اینکه که سخن بود که اونجا خراب بکنن آقای خل هم تشیی برده بودن اونجا رو خراب بکنند. این است که این صحبت فردوسی حالا بدون جهت مطرح هست که هر چرا، هر ارزش نیکی رو که ملایان تخریب بکنن مسادرش میکنن. اگر نشود که ما اون را ازبی ببریم خب به خود مصادره میکنیم. این خیلی خوب است. این است که، عرض می‌کنم وقتی نگاه بکنیم به نوشته هاشون و سخنانشون و, و روزنامه هاشون بیبینیم هر کار نیکی بوده دست اهل دین بوده از مشروطه بگیرید به حضور نمیدونن ولی کردن صنعت نهر بگیرید هر از رو میزا کوچه جنگلی گفتن که این مرد مجدهد بوده و اصلا برای اسلام کار می‌کرده و اینها همین ها مصادرات و مقالطات سخنان ملدایان هست و درواب فردوسی هم چنین کردن البته خود ملایان بیزار هستن از فردوسی و شاهنامه من بارها عرض کردم اگر شما در خانه یک مولای شیعه یا سنی کتاب رو پیدا کردید به من گادرس فرمایید حرفام پس میگی میسر مه... نیست چون کفریات مدح گبرکان هست این کتاب و از روزگاری که منتشر شده است به حدود سال 400 که البته شاهنامه سه تدوین داشتی خدمتتون توضیح میدم اینها خصومتشون از آغاز شده و اون ملایه بزرگی که در شهر توس اونجا حجت الاسلام بود و نمیزم حاکم شهر بود بسیار بسیار مشهور هست که جسر فردوسی رو در گورستان مسلمان نگذاش نگذاشت به حاک سفاردن که این مده گبرکان کرده است و این کافر و از دین بیرون بوده است و در منزل شخصیش این جایی که ما گور فردوسی میشناسیم این بر حدس و گمان مرحوم فروقی و مرحوم قوم سلطنه رفتن گفتن ما حدس میزنیم اینجا باشد. و خیلی هم خوب شد اگر در قبرستان عموی بود احتمالا این بارگاه عظیمی که واقعا ساخته شد که بایستی بهتر از این هم می بود اما با بسیار متشکریم از کسانی که این کار رو کردن این هم نمی بود این از که دشمنی اساساً با فردوسی و محتوی کتاب با اونچه فردوسی گفته است از ابتدای کار مد نظر علمای دین بوده یکی از اینها عرض کنم یک کتاب نوشته است به نام فضاء الرواف که ها... 68 فضیحت به شیعه نسبت داده در اونجا میگوید مقصود این ملعون یعنی فردوسی از برکشیدن شجاعت های رستم و سرخاب سهراب رو سرخاب میگفتن در بعضی که نساق قدیم هم سرخاب آمد شجاعت مولا علی و شجاعان عرب هست این حرف رو درست زده البته یادمونه اینش رو با خون درست فهمیده یعنی این که با برکشیدن اینها میخواستن اونا رو بکنن و میرسیم حتی به امام غزالی طوسی که بزرگترین اسلامیون هست، بزرگ شریعت مدار هست، بسیار گفتنین لایق پیغمبری بوده او هم میگه از این کتاب احتراز بکنید. اون که در شب نوروز فروخته میشود و اینها رو تعطیل بکنید. یعنی اینها رو رسم گبرکان میگفتن، عنصری قصیده دارد که در باب نوروز هست یا جشن صده، به محمود میگه تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است. راوغ مداری بر به گبرگان رفتن یعنی که شما اسلامی هستید در تضاد هست این داستان اسلام با این چه ایرانیان بودند و گبرگان بودند و کفار بودند اینها این است این که به طور کلی و به طور عمومی این قضیه در تضاد افتاده خود ملیان دوست نمی دارند که نه در باب این کتاب صحبتی بشه نه ذکری بشود اما بسیار کسان هستند حتی در این آمریکا مقاله ها می نویسند بسیار آمیانه در این حوزه دانشگاه ها با یک عناوینه که کسب کردند دکترهایی که اینجا گرفتن اند زبان فارسی در لس آنجلس مثل اینکه بنده برم در قزوین دکتری زبان چینی بگیرم در دانشگاه قزوین اینها مقاله ها می نویسند که بله آقا این اصلا این فردوسی اصلا اصلا به خاطر اسلام کار کرده چیز دیگری نبوده این عاشق نبی بود دست ولی بود دست وصی بود است اینا همه مقالطات هست ما بایستی بدانیم که تاریخ یک چیزی بسیار بسیار پیچیده است. اگر کسی مدعی بشود که همه چیز رو درباب تاریخی مقتر میداند بیموند مغلطه بیکن اشاره به فرانسیس بیکن هست حالا اینم یک توضیحی دار ما میتوانیم چیزکی از چیزها بدانیم تاریخ خیلی چیز درهم و پیچیده ایست یکی بخواد تاریخ ایرانیان خارج کشور رو یه روزی بنویسه 500 سال آینده میگه دو سه نام اینا حالی که خیلی خیلی جامعه مشغولی است روزگار فردوسی بسیار بسیار در واقع جامعه ایران جامعه بزرگی بوده هزار یک اتفاق میافتاده بزرگان بودند کسانی بودند که تاثیر در کارها داشتن ما اونها رو نمی‌شناسیم این است که خیلی خیلی مشکل است ما مدعی باشیم همه چیز راجع به اون روزگار می‌دانیم ما چیزکی در نهایت مورخ می‌داند در باب چیزها بدانند. این یک مطلب است مطلب دیگر آنکه اگر ما سعی بکنیم در واقع تفکرات امروز رو برداشت‌های امروز رو از کتاب شاهنامه از اسلام از غیر اسلام اینها رو تحمیل بکنیم به آدم هایی که در روزگار ما نیستن در روزگار قدیم این مرتکب یک مغلطه بسیار بسیار بزرگ شدیم به اصطلاح می‌دن مغلطه پرزنتیسم یعنی شرایط حاضر رو ما بخوام تحمیل کنیم به روزگار قدیم غالبا من شنیدم شما هم شنیدید که آوا این ابو مسلم خراسانی که توانست مثلا اومعبیان رو براندازد به چه دلیل خودش نشد مثلا خلیفه یا فرض کنین این خاندان دیلمی که توانستد برود در بغداد خلیفه رو سیلی بزند و اون رو عوض بکند چرا این از دیلمی خود اون نشد از خلیفه مثلا خب سوالی است. سآلیست مقالطات هست ما شرایط ابو مسلم رو نمیدانیم و موضوع مشروعیت رو از یاد میبریم که مردم مردم مسلمان اون روزگار یک مردی مثل ابو مسلم خراسانی رو مشروع به حکومت نمیدانستند کاری که میتوانسته کرده دیلمیان اونچه میتوانستند برای ایران کردن مقلطه دیگری که بهش متافیزیکال میگن میگن دفالسی آب متافیزیکال کوستشن یعنی چیزی که اتفاق نیفتاده ما فرض کنیم اگر اتفاق میفتاد چگونه بود بعد از اون استنتاج بکنیم. یه کاملا مغلط است. اگر به جای مثلا فرض کنید که نمیدونم آقا محمد خان قاجار رضا شاه می بود چه میشد؟ بعد استنتاج می نتیجه های میگیریم. ما نمیدانیم چه میشد. تاریخ قضاوتش در باب اون چیزیست که شده است. اگر در تاریخ بردن کاملا خطاست البته از بعضی در مقدمات ما می تونیم حدهایی بزنیم. بگوییم ام احتمالاً اما نه الزامن این اگر و مگر مشهور است که تاریخ با اگر و مگر نوشته نمیشه تاریخ اون چیزی است که اتفاق افتاده حالا اگر این به جای اون بود این طور میشد یا اگر اون نمیشد ممکن بود یه طوری دیگری بشه ما نمیتوانیم بگیم که آقای الگور مثلا به جای آقای بوش با اون تعداد رای که ملاحظه کرده رو میدونید رئیس و مش می چه میشد ما نمیدانیم چه میشد چون نشده تاریخ نمی씀 نمیتوانیم بکنیم بنابراین اینها رو در نظر داشته باشیم اما در هر صورت ما اطلاعات بسیاری از روزگار اسلام داریم که چه ماهیتی داشته است برخوردش با ایران چه بوده است این است که امشب مبالغی ما باعث خدمت شما اینجا به مقدمات بپردازیم مقدمات که چه بوده است این داستان ایران در روزگار فردوسی تفکر غالب در منازل ایرانیان چه بوده راجع به چه چی چیزهایی ایرانی‌ها صحبت میکرد؟ از اصلا انگیزه تولید این کتاب چه بوده چرا کتاب اهمیت پیدا کرده چرا برای ایرانیان این اندازه مهم شده است که تمام این آثار در خراسان محل معرفت و تمدن خراسان بوده به این آثار بزرگ همه از میان رفتن بسیاری از آثار از میان رفتن یک بیت هم از این کتاب گم نشد ممکن اضافه کرده باشم رزقی که داشتن لو فکر می‌گرام اینجا رو کم گفتیم با خودمون اضافه کنیم اما ازش کم نشده چیزی به واسط علاقه ای بود است که داشتن اینا